مصنوی معنوی مولوی برنامه 1 ششم، حکایت آن زاهد که در سال قهد شاد و خندان بود با مفلسی و بسیاری ایال و خلق می مردند از گرسنگی. گفتندش چه هنگام شادی است که هنگام صد تعذیت است؟ گفت مرا باری نیست. همچنان کانزاهدن در سال قحط بود او خندان و گریان جمله رد پس بگفتندش چه جای خنده است قهت بیخ مؤمنان برکنده است رحمت از ما چشم خود بردوخته است زافتاب تیز صحرا سوخته است کشت و باغ و رز سیاه ایستاده است در زمین نم نیست نه بالا نه پست خلق می میرند زین قهت و عذاب ده ده و صد صد چماهی دور عذاب بر مسلمانان نمی آری تو رحم مؤمنان خیشند و یکتن شهم و لهم. رنج یک جزوی زتن رنج همه است، گردم صلح است یا خود ملحمه است. گفت در چشم شما قهت است این، پیش چشمم چون بهشت است این زمین. من همه بینم به هر دشت و مکان خوشه ها انبه رسیده تا میان. خوشه در موج از باد سبا، خر بیابان سبزتر از گندنا زازمون من دست بروی می زنم دست و چشم خیش را چون برکنم یار فرعون تنید ای قوم دون زان نماید را نیل خون یار موسی خرد گردید زود تا نماند خون و بینید آب رود با پدر از تو جفای می رود آن پدر در چشم تو سگ می شود آن پدر سگ نیست تأثیر جفاست که چنان رحمت نظر را سگ نماست گرگ می یوسف را به چشم چون که اخوان را حسودی بود و خشم با پدر چون سال کردی خشم رفت، آن سگی شد گشت بابا یار تفت. بیان آنکه مجموع عالم صورت عقل کل است چون با عقل کل به کژروی جفا کردی صورت عالم تو را غم فزاید اغلب احوال چنانکه دل با پدر بد کردی صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن اگرچه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان کل عالم صورت عقل کل است کوست بابای هرانک اهل کل است چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سگ نمود صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. من که صلحم دایه من با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن، فرو میرد ملال من همه بینم جهان را پرنعیم آبها از چشمه ها جوشان مقیم بانگ آبش میرسد در گوش من مست میگردد زمیر و هوش من شاخه ها رقصان شده چون تایبان برگها ها کفزن مثال مطربان برق آینه است لامع از نمد گرنماید آینه تا چون بود از هزاران می نگویم من یکی که آگنده است هر گوش از شکی پیش وهم این گفت مجده دادن است عقل گوید مجدچه نقد من است. قصه فرزندان آزایر علیه السلام که از پدر احوال پدر میپرسیدند، میگفت آره دیدمش می آید. بعضی شناختندش بیهوش شدند. بعضی نشناختند میگفتند خود مجده داد این بیهوش شدن چیست؟ همچو پوران ازایر اندر گذر، آمده پرسان ز احوال پدر، گشتهشان پیر و باباشان جوان، پس پدرشان پیش آمد ناگهان، پس بپرسیدند از او کی ره گذر، از ازایر ما عجب داری خبر؟ که کسی کسیمان گفت که امروز آن سند، بعد نومیدی زبیرون می رسد. گفت آره بعد من خواهد رسید آن یکی خوش شد چو این مژده شنید بانگ می زد کی مبشر باش شاد واندگر بشناخت بیهوش افتاد که چه جای مجده است ای خیرسر که در افتادیم در کان شکر وهم را مجدست و پیش عقل نقد زن که چشم وهم شد محجوب فقد کافران را درد و مؤمن را بشیر لیک نقد حال در چشم بسیر زن که عاشق در دم نقد است ماست لاجرم از کفر و ایمان برتر است کفر و ایمان هر دو خود در بان است کوست مغز و, کفر و دین او را دو پوست کفر قشر خشک رو برتافته باز ایمان قشر لذت یافته قشرهای خشک را جا آتش است خشر پیوسته با مغز جان خوش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است. برتر است از خوش که لذت گستر است. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا بر موسی موسیم از بر گرد. در خور عقل عوام این گفته شد. از سخن باقی آن، بن هفته شد زر عقلت ریزه استای متهم بر قرازه مهر سکه چون نهم عقل تو قسمت شده بر صد مهم بر هزاران آرزو و تم و رم جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق جو جوی، چون جمع گردی زشت با پس توان زد بر تو سکه پادشاه. ورز مسقالی شوی افزون تو خام، از تو سازد شه یکی زرین جام. پس بر او هم نام و هم القاب شاه، باشد و هم صورتش ایوازل خواه، تا که معشوقت بود، هم نان هم آب، هم چراغ و شاهد و نقل و شراب. جمع کن خود را جماعت رحمت است، تا توانم با تو گفتن آن چه هست. زان که گفتن از برای است جان شرک از باوری حق بریست. جان قسمت گشته بر و فلک در میان شهست سودا مشترک پس خموشی بهدهد او را ثبوت پس جواب احمقان آمد سکوت این همی دانم ولی مستی تن می گشاید مراد من دهن آنچنان که ادسه و از خامیاز این دهان گردد به ناخواه تو باز، این حدیث که اینی استغفر الله فی كل یوم سب این موسیقی موسیقی همچو پیغمبر ز گفتن و از توبه آرم روز من هفتاد بار لیک آن مستی شود توبه شکن منسی است این مستی تن جامکن حکمت اظهار تاریخ دراز مستی انداخت بر بردانای راز راز پنهان با چنین تبل و علم آب جوشان گشته از جف القلم رحمت بیهد ربانه هر زمان خفته اید از درک آن ای مردمان جامعه خفته خورد از جوی آب خفته اندر خواب جویای سراب می دود کانجای بوی آب هست زین تفکر راه را برخیش بست زان که آنجا گفت زینجا دور شد برخیال از حق محجور شد دور بینانند و بس خفته روان رحمت آریدشان ای ره روان من ندیدم تشنگی خواب آورد. خواب آرد تشنگی بی خرد، خود خرد آن است، کو از حق چرید، نی خرد کن را اتارد آورید، بیان آن که عقل جزبی تا به گور بیش نبیند. در باقی مقلد اولیا و انبیاست. پیشبینی این خرد تا گور بود. وان صاحب دل به نفخ سور بود. این خرد از گور و خاک نگذرد وین قدم عرصه عجایب نسپرد زین قدم وین عقل رو بیزار شو چشم غیبی جویا برخوردار شو همچو موسا نور کیا یابد ز جایب سخرۀ استاد و شاگرد کتاب زین نظر وین عقل ناید جز دوار پس نظر بگذار و بگزین انتظار از سخنگویی مجوی درتفاع منتظر را بهز گفتن استماع منصب تعلیم نوع شهوت است هر خیال شهوتی در ره بوت است گر به فضلش پی ببردی هر فضول کیفر استادی خدا چندین رسول عقل جزوی همچو برق است و درخش، در درخش کیتوان توان شد سوی وخش. نیست نور برق بهره رهبری، بلکه امر است عبر را که می گیری. برق عقل ما برای گریه است، تا بگیرید نیستی در شوق هست، عقل کودک گفت بر کتاب تن لیک نتواند به خود آموختن اقل رنجور آردش سوی طبیب لیک نبود در دوا اقلش مصیب نک شیاطین سوی گردون میشدند گوش بر اسرار بالا میزدند میره اندکی اندک تا شهاب میراندشان زود از سما که آنجا رسول آمده است هرچی میخواهید زو آید بده است گر همی جوید در بیبه ها ادخل الابیات من ابوابها ها میزنان حلقه در و باب بیست از سوی بام فلکتان راه نیست نیست حاجت تان بدین راه دراز خاکی را داده ایم اسرار راز پیش او آید اگر خاین نیید نیشکر گردید از او گرچه نیید سبزه رویاند یاند ز خاکت آن دلیل نیست کم از سم اسب جبریل سبزه گردید تازه گردی در نوی گر تو خاک اسب جبریلی شوی سبزه جانبخش بخش کان را سامری کرد در گوساله تا شد گوهری جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او آنچنان بانگی که شد فتنه ادو گر امین آید سوی اهل راز وارهید از سرکله مانند باز سرکلاه چشم بند گوش بند که از او باز است مسکین و نجند زانکلاه مرچشم بازان را صد است که همه میلش سوی جنس خود است چون برید از جنس با شه گشت یار برگشاید چشم او را بازدار راند دیوان را حق از مرساد خیش عقل جزبی را ز استبداد خیش که سری کم کن نی تو مستبد بلکه شاگرد دلی و مستعد رو بر دل رو که تو جزب دلی هین که بنده پادشاه عادلی. بندگی او به سلطانی است که انا خیرون دم شیطانی است. فرق بین و برگزین تو ای حبیس بندگی آدم از کبر بلیس. گفت آنکه هست خورشید رهو، حرف توبا، هر که زلت نفسهو. سایه توبا ببین و خوش بخوست. سر بنه در سایه به سرکش بخواسب زل زلت نفسهو خوش مسجه است مستعد آن را مهجه است گر از این سایه روی سوی منی زود تاغی گردی و ره گم کنی بیان آن که یا ایوهاللزین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی پس برو خاموش باش از انقیاد زیر زل امر شیخ و اوستاد ورنه گرچه مستعد و قابلی مسخ گردی تو زلاف کاملی حمز استعداد وامانی اگر سرکشی زستاد راز و با خبر صبر کن در موزدوزی تو هنوز وربوی بی سبر گردی پاردوز کهندوزان گربودشان صبر و حلم جمله نودوزان شدندی هم به علم پس بکوشی و به آخر اسکلال هم تو گوی خیش کل عقل و اقال آن مرد مفلسف روز مرگ عقل را می دید بس بی بال و برگ بی غرض می کرد اندم ایتراف که زکاوت راندیم اسب از گذاف از غرور سرکشیدیم از رجال آشنا کردیم در بحر خیال آشنا هیچ است اندر بحر رو نیست اینجا چاره جز کشتی نو این چونین فرمود آن شاه رسل که منم کشتی در این دریای کل یا کسی کو در بصیرت من شد خلیفه راستی بر جای من کشتی نوهیم در دریا که تا رو نگردانیز کشتی ای فتا آن سوی هر کوه مراو از نبی لا آسمال یومه شناو می نماید پاست این کشتی زبند می نماید کوه فکرت بس بلند پس منگر هان هن این پاست را بنگران فضل حق پیبست را در اولو کوه فکرت کم نگر که یکی موجش کند زیر و زبر گر تو کنعانی نداری باورم گر چندین نصیحت پرورم گوش کنعان کی پذیرد این کلام که بر او مهر خدایست و ختام. کی گذارد موعظه بر مهر حق؟ کی بگرداند حدث حکم سبق؟ لیک میگویم حدیث خوشپه، بر امید آنکه که تو آن نیی. آخرین اقرار خواهی کرد هین، همز اول روز آخر را ببین. می توانی دید آخر را مکن چشم آخر بین را کور که هن. هر که آخر بین بود مسعود بار، نبودش هر دم ز ره رفتن اصار، گر نخواهی هر دم این خوفت خیز، کن ز خاک پای مرد چشم تیز. کهل دیده ساز خاک پاش را تا بیندازی سر اوباش را، که از این شاگردی و زین افتقار سوزن باشی شوی تو زلفقار، سرمکن مکن تو خاک هر بگزیده را، هم بسوزد، هم بسازد دیده را. چشم اشتر زان بود بس نور بار، کو خورد از بحر نور چشم خار.